یرامیان درود بر شما فایل آوایی دهم از کتاب فیزیولوژی ایمان نوشته نون رو با هم آغاز می‌کنیم صفحه 32 ادامه مبحث فیزیولوژی نفوذ کلام روحانیت عنوان تقدس یافتن گاه اطرافیان و یا طرفداران یک روحانی داستانهای اجازامیز و کراماتی برای آن روحانی نقل می کنند که نمی اتفاق افتاده باشند مگر اینکه آن روحانی معید به تعییدات الهی باشد. باور این داستانها همانطور که در بخشهای پیشین کتاب گفتم باعث می گردد که مؤمنین آن روحانی را مورد تأیید و حمایت خدایشان تصبر کنند و از آنجا که آن خدا را حاضر و ناظر بر افکار خود می دانند بخش های مغزشان اجازه نقد و یا تردید در اعمال و گفتار آن روحانی را به بخش فوقانی مغز نمیدهد. گفتیم به این حالت تقدس گفته می شود اینک آن روحانی در ذهن این مؤمنین که این داستان ها را باور کردهاند مقدس می گردد. کافی است این روحانی هیچگاه درباره این داستان هایی که پیرامونش گفته می شود اظهار نظر نکند. یعنی نه تیید کند نه تکذیب کند. همین سکوت به منظره تعیید این داستان ها طقی می گردد و تقدس شخص روحانی کامل می شود. اگر مردم برای تبرک توسط این روحانی دست او را ببوسند و یا از تهمانده غذایش بخورند و یا بخواهند بر سر و روی خودشان و بچه دست بکشد و او هم امتناع نکند و بدون اعتراض این کارها را انجام دهد همین اعمال طرفداران او الگویی می شود برای بقیه و نیز دلیلی می شود برای آنهایی که این قبیل حرکات جمعی برایشان حس شناخت و معرفت ایجاد می کند. اگر در این بین کسی به طور تصادفی یا به دلیل اثر دارونما که پیشتر به آن اشاره کردیم بیماریش پس از دعا یا نوازش این روحانی بهبود یابد، بد داستانهای معجزه و کرامات او هرچه بیشتر و متواترتر می گردد و تقدس او در ازهان بیشتری شکل می‌گیرد. در این حالت این روحانی برای این مؤمنین مقدس و معصوم از خطاست. البته شاید اگر از مؤمنین بپرسند آیا این روحانی را معصوم از خطا می دانند؟ لفظا جواب دهند خیر. ولی در عمل با گفته و کرده او همان ای را می کنند که با گفته و کرده یک شخص معصوم از خطا می کنند. یعنی آن را به تمامی درست و به حق می دانند و در صحت آن تردید به خود راه نمی دهند. در چنین شرایطی اگرچه بسیاری از مؤمنین طرفدار این روحانی دلیل طبعیت از او را نادانی خود و دانایی او بیان می کنند، اما وقتی شخص دانا و متخصص دیگری و یا حتی روحانی دیگری با این روحانی مقدس مخالفت کند، همچنان طرف روحانی مقدسشان را میگیرند و هیچ شانسی برای درستی سخن آن روحانی دیگر و یا آن فرد دانای دیگر قائل نیستند حالا این روحانی توان بالقوه دارد تا مذهب یا فرقی جدیدی در دل دین اصلی ایجاد کند و یا به نمایش قدرت سیاسیش برای ایجاد تغییراتی که به آن مایل است بپردازد عنوان تلقین احساسات و عواطف مصنوعی در حال راه رفتن هستیم که ناگهان جلوی پایمان یک مار بزرگ سمی می بینیم علائم فیزیولوژیک ترس در ما ظاهر میشود مثلاً ضربان قلبمان بالا می رود و تنفسمان تند می شود. به مادری خبر میدهند که فرزندش تصادف کرده است. او نمیتواند وحشت و اندوهش را کنترل کند. هرچقدر هم که به او بگویند باید بر خودش مسلط باشد تا بتواند درست تصمیم بگیرد، احساساتش دست خودش نیست. تمام علائم فیزیولوژیک وحشت در او ظاهر شده است. به کسی میگویند که شریکش انبالش را برده است تمام آثار فیزیولوژیک خشم در او ظاهر می شود هر چقدر هم که به او گفته شود مال دنیا ارزش ندارد نمیتواند خشم خود را کنترل کند همانطور که گفتیم رشته های عصبی که اطلاعات را از حواس ما وارد مغز می کنند ابتدا به ساقه مغز و دستگاه لیمبیک می روند، و پیش از آن که داده‌هایشان در بخش خداگاه مغز تجزیه و تحلیل شوند در بخش‌های پایین‌تر مغز ما که مربوط به احساسات و عواطف هستند، تحلیل و تفسیر میگردند معنا می‌یابند و نتیجه این تفسیر می‌تواند باعث واکنش متناسب احساسی و عاطفی گردد هر چیزی که معنای خطر جانی برای ما یا عزیزان ما و یا معنای صدمه به منافع و جریان عادی زندگی ما را داشته باشد ایجاد احساسات و عواطف متناسب را در ما کلید می‌زند و ما کنترل چندانی بر بروز آنها نداریم و نهایتم فقط در جریان قرار می‌گیریم که حالمان دگرگون شده و بسیاری از عکس‌العمل‌هایمان هم دست خودمان نخواهد بود کسی که تیم مورد علاقه‌اش گل می‌زند نمی تواند خوشحال نباشد و عکس عملهایش هم دست خودش نیست یک روحانی وقتی می بیند مقدسات دینش مورد نقادی قرار می گیرند احتمالاً بخش های مرکزی و زیرین مغز او به سرعت متوجه می شوند که شغل و منافع و آوروی او در معرض صدمه است لذا شاید واقعا خشم و وحشت وجودش را بگیرد اما شاید در این شرایط بسیاری از مؤمنین خود را در معرض هیچ خطری نبینند یعنی مغز آنها تفسیری مبنی بر لطمه به حیات و منافع آنها در اثر نقد دین تشخیص نمیدهد، و لذا هیچ احساس خشم و وحشتی در وجودشان شکل نمیگیرد. اما ممکن است آن روحانی به آنها بگوید به مقدسات دینی شما توهین شده و باید قیرت دینی به دهید و خشمگیم باشید و گرنه معلوم می شود که مؤمن واقعی نیستید و خدا از شما ناراضی خواهد بود و انتقام این بیتفاوتی را خواهد گرفت اینجا اثری از خشم واقعی و فیزیولوژیک وجود ندارد. چرا که اگر وجود داشت اصلا نیازی به تحریک نداشت و حتی اگر روحانی می‌خواست آن خشم را در مؤمنین کنترل کند هم نمی توانست به راحتی این کار را انجام دهد. خشم و درد و اندوه و عشق و ترس واقعی نیاز به یادآوری ندارد چون همه این احساسات و عواطف توسط بخش‌های ناخودآگاه مغز و به طور خودکار پس از مشاهده صحنه مربوطه و با شنیدن خبر مربوطه ایجاد می گردد خشم یا هر احساسی که به تقاضا و یا یادآوری روحانیون ایجاد می‌شود در واقع یک احساس تلقین شده و مصنوعی است و اختیار ایجاد یا رفع آن هم در دست همان شخص تلقین کننده است. بعد از تلقین احساسات و عواطف، نوبت به اکسل عمل متناسب با آن احساسات است که آن را هم باید خود روحانی به مؤمنین بیاموزد. مثلا مرگ شخصی در صدها سال قبل، نمی تواند بر روی حیات و منافع امروز یک مؤمن معمولی اثر داشته باشد و او را به طور طبیعی و خودکار اندوهگین نماید. اما به او گفته می شود که باید در سالگرد مرگ آن شخص اندوهگین باشد. سپس به او گفته می شود برای بروز این اندوه چه مراسم و مناسکی باید برگزار کند و یا چه حرکاتی باید انجام دهد و از انجام چه حرکاتی پرهیز کند. یا به مؤمنین گفته میشود در سالگرد تولد کسی که صدها سال قبل به دنیا آمده باید خوشحال باشند وگرنه مؤمن خوبی نیستند آنگاه گفته میشود که این خوشحالی را چطور باید بروز یا مثلا روحانیون شیعه سالها میگویند که باید هر سال در ازای از دنیا رفتن امام یازدهم تا زمان غروب آفتاب ماتم داشته باشند سپس تصمیمشان تغییر میکند و میگویند باید در روز سالگرد مرگ امام 11 هم تا ظهر ماتم داشته باشند اما از ظهر به بعد به دلیل اینکه سالگرد نشستن امام دوازدهم بر سریر امامت است باید خوشحال باشند آنها تعیین میکنند در آن ماتم چه کارهایی نباید کرد و در این خوشحالی چه کارهایی باید کرد زمانی که شیشان مسیحی مؤمنین را به نشان دادن خشم بر علیه هر کسی که تردیدی در دین روا می‌داشت تشویق می‌کردند و مردم هم خشم نشان می‌دادند و در سوزاندن افراد بی‌ایمان مشارکت می‌کردند اکنون در همان سرزمینها مؤمنین مسیحی حتی در مقابل کاریکاتورهای عیسی مسیح هم تشویق به نشان دادن خشم نمی‌شوند و خشمی هم نشان نمی دهند و تا حدود زیادی با این مسئله کنار می اینکه روحانیون می توانند احساسات را به مؤمنین بیاموزند و آنها را بر این اساس به حرکت درآورند قدرت زیادی به آنها می دهد و منتقدان آنها همیشه این قدرت را مد نظر دارند و مثلا ممکن است یک نویسنده ی منتقد خود را ناچار ببیند که کتابش را با نام مستعار منتشر کنند همین توانایی آنها کمک میکند که حتی اگر حکومت هم در اختیارشان نباشد حاکمان این قدرت روحانیون را مد نظر داشته باشند و با آنها در نیفتند و مثلا اجازه دهند صدای آنها یگان صدایی باشد که به گوش مؤمنین میرسد البته توانایی آموختن احساسات مصنوعی فقط مختص روحانیون نیست. بعضی سیاستمداران، مداران، رسانه ها و روشنفکران هم می توانند این هنر را داشته باشند. عنوان اصرار بر عهدهدار شدن تعلیم و تربیت کودکان. شاید بتوان توان گفت جز در بعضی از کشورهای سکولار معاصر هموار روحانیت در طول تاریخ اصرار داشته به مراکز تعلیم و تربیتی کودکان، نوجوانان و جوانان تسلط کامل داشته باشد و تسلط هم داشته است. در بخش های ابتدایی کتاب گفتم که نشاندن نگهبان ذهن در کودکی چطور مسیر ایجاد ایمان دینی را آغاز و همبار می کند. اما خود روحانیونی که مستقیما با نوجوانان سر و کار پیدا می کنند می توانند، از یک خصوصیت دیگر نیز برای جذب آنها نه فقط به ایمان دینی بلکه به فرقه و مسلک و ایدئولوژی خودشان استفاده کنند. مطالعه بر روی سه گروه سنی صورت گرفت. گروه اول کودکان 6 تا 12 سال، گروه دوم نوجوانان 13 تا 17 سال و گروه سوم بزرگسالان 18 تا 29 سال. در حالی که از مغز این افراد توسط دستگاه FMI تصویر برداری می تصاویری از چهره ها به آنها نشان داده می و از آنها خواسته می شد روی چهره غیر خندان دکمه ای را فشار دهند و روی چهره های خندان دکمه را فشار ندهند. سرعت پخش تصاویر را هرچه بیشتر کردند، تا ببینند، نسبت خطا با افزایش سن کاهش می‌یابد یا خیر؟ عملکرد افراد بزرگسال بهتر از کودکان بود. اما عملکرد نوجوانان از همه بدتر بود. آنها وقتی چهره خندان میدیدند تمایل بیشتری به زدن دکمه داشتند و ناخودآگاه دکمه را بیشتر میزدند وقتی قرار شد برعکس عمل کنند یعنی روی چهره خندان دکمه را فشار دهند و روی چهره غیر خندان دکمه را فشار ندهند میزان خطا با افزایش سن کاهش یافت یعنی کودکان بیشترین خطا، بزرگسالان کمترین خطا و نوجوانان چیزی در میان آن دو بودند وقتی نوجوانان چهره خندان میبینند و دستور دارند کاری را نکنند و خوددار باشند ضعیف‌تر از کودکان و یا بالغین عمل می‌کنند گویی نوجوانان نمی‌توانند به راحتی در تعامل با های مثبت مقاومت کنند و عکس عمل نشان ندهند تصاویر اف نشان میداد که فعالیت همزمان ونترال استریاتوم و دورسال استریاتوم در نوجوانان موجب این عمل کرده خاص می‌شود این مناطق در بزرگسالان و کودکان چنین شکلی از فعالیت را نشان نمی دادند. به هر حال نوجوانان در این سنین دوست دارند، جذب گروه ها شوند و مورد قبول افراد واقع کردند. یک چهره خندان که از آنها تعریف کند و مثلا بگوید شما چه نوجوان با ایمان و صادق و پاکی هستید میتواند قوای شناختی آنها را مختل کند. وقتی کسی به روی نوجوانان لبخند میزند یا گروهی آنها را پذیرا می‌گردد به جای اینکه ابتدا آن شخص یا گروه را با نگاه شکاک و نقاد ورانداز کنند تمایل دارند با آنها وارد تعامل شوند سال 1938 وقتی هیتلر کشور اتریش را اشغال کرد و آن را زمینه آلمان نمود تئودور اینیتسر اسقف اعظم وین که سابقا مدافع جدی جامعه یهودیان در اتریش بود فرمان داد تا در تمام کلیساهای کاتولیک پرچم صلیب شکسته حزب نازی را آویزان کنند و زنگ کلیساها را به افتخار ورود هیتلر به صدا درآورند او هنگام استقبال از هیتلر در سخنرانی خود گفت کاتولیک های اتریش وفادارترین فرزندان رایش کبیر خواهند بود که در چنین روز سرنوشت‌سازی به آغوش مام وطن بازگشته است هیتلر اصلا اتریشی بود اسقف اعظم در خطابه خود تنها یک شرط در برابر هیتلر قرار داد آن هم این بود که آزادی کلیسا تضمین شده باشد و نقش تربیتی کلیسا را روی نوجوانان تضمین کند عنوان آیا ایمان دینی بر فرگشت انسان تأثیر داشته تا اینجا دیدیم بعضی خصوصیات مغزی و خصایل روانی هوموسافینز که برای رشد شناختی و ایجاد پیوندهای اجتماعی و ادامه زندگی و جفتیابی لازم بودهاند ظاهرا محملی شدهاند برای سوار شدن ایمان دینی بر مغز ما یعنی تا اینجای کتاب به نظر می آید فرگشت و تکامل ما انسانها خصوصیات مهمی در ما ایجاد شده که برای هرچ محکمتر و موثرتر شدن زندگی اجتماعی و ادامه حیات و تولید مثل موفق لازم بوده و آنها که این خصوصیات را داشتند در برابر آنها که این خصوصیات را نداشتند از شانس بیشتری برای زنده ماندن و چیرگی بر دیگران و بر طبیعت و دست یابی حد اکثری به منابع محدود آن برخوردار بودند. در نگاه اول به نظر می آید ایمان دینی به عنوان یک آرزه بر این خصوصیات حیاتی روان ما سوار شده و در مواردی سیستم شناختی اعضای هوموساپینس را مختل می کند، و نمیگذارد آنها درست و غلط را تشخیص دهند و موجب چیرگی بعضی از اعضا بر بعضی دیگر و بهره کشی از آنها می شود حتی اغلب در نگاه به افراد جامعه اینطور به نظر می رسد که گفتم و به نظر نمیآید آن فردی که دارای ایمان دینی می شود تواند محیط اطرافش را بهتر از آن که ایمان دینی ندارد بشناسد بلکه ظاهرا پدیده های اطرافش را با سوگیری های بسیار بیشتری تفسیر می کند و بیشتر دوچار خطا در شناخت و معرفت نسبت به محیط و اطرافیان می گردن. حتی ممکن است جانش را بیجهت بر سر این خطاها از دست بدهد و شانس تولید مثل و انتقال ژنش کمتر از کسی که دارای ایمان دینی نیست باشد. اگر اینطور باشد، چرا نسل دینداران از بین نرفته؟ چرا آنها که تمایل به یافتن حقیقت دارند و از سوگیری هایی که معلول ایمان دینی است فارغند تعدادشان افزون نشده و بر تعداد مؤمنین نچربیده اگر حقیقت بینی و معرفت موجه و منطبق بر واقعیت برای حیات و ادامه نسل ما بهتر از باور به افسانه ها و پذیرش خرافات است چرا در طی هزاران سال گذشته به کمک جهش های جنی و انتخاب طبیعی به تدریج شکاکتر جستجوگرتر و حقیقت طلبتر نشده ایم که اگر ندر کودکی لا اقل پس از سن بلوغ با اولین داستانی که به ما تلقین شده است ناسازگاری کنیم و پرسشگری و یافتن حقیقت را به بنشعگی حاصل از افسانه های دینی ترجیح دهید آیا ممکن است ایمان دینی شانس زنده ماندن و تولید مثل ما را به شکلی افزایش هم داده باشد بیایید در ادامه در تاریخمان کنکاشی کنیم شاید چیزی پیدا کنیم عنوان هوموساپینس گونه‌ای با اخلاق یا بی اخلاق دیده شده شامپانزهایی که شنا نیستند برای نجات شامپانزهای دیگر در خندقهای آب باقوعش به آب زدند و غرق شدند دیده شده میمونهای رزوسی که می با کشیدن یک زنجیر که هم به آنها قضا میداد و هم به یک میمون رزوس دیگر شوک الکتریکی وارد میکرد به قضا دست یابند ترجیح میدادند روزهای متمادی گرسنگی را تحمل کنند اما زنجیر را نکشند دکتر فرانس دوال از دانشگاه اموری که از دهه 1960 رفتار ها را مورد مطالعه قرار داده است مشاهده کرده که بعد از دعوای دو شامپانزه افراد گروه سعی می‌کنند شامپانزه بازنده را تسلی دهند این رفتار بین میمون بزرگ مثل گوریل‌ها هم شایع است. اما بین بعضی میمون مثل مکاک ها دیده نمی شود و مکاک های ماده حتی بعد از آسیب دیدن بچه برای تسلی آنها کاری نمی کند. دیده شده که شامپانزه ها به اعضای پیر و نیز به شامپانزهی که یک دست ندارد کمک می کنند. فرانس دوال عقیده دارد که این رفتارها بر برپایه حس همدلی و فهم متقابل احساس یکدیگر شکل می‌گیرد. همدلی و همزاد پنداری با دیگران اساس رفتار اخلاقی است. اعضای گونه مانیز هر جا که درد و رنج عضو دیگر را احساس می کنند، آغاز به انجام عمل اخلاقی می نمایند. و مثلا به او کمک می کنند و یا از آزار او اجتناب مینمایند و معنای قاعده آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند را درک می کنند. تشابهات اخلاقی ما انسان ها و خویشاوندان نزدیکمان که همان نخستی های بزرگ مثل شامپانزه ها، گوریل ها و بونوبوها هستند قابل توجه است آنچنان که می توان نتیجه رفت پایستگی زندگی اجتماعی که یک مزیت زیستی بزرگ برای ما انسان و میمون به وجود آورده تا حد زیادی بر همین خصلت‌های اخلاقی استوار است و این خصلت‌های اخلاقی نیز محصول فرگشت گونه های ما است. این خصلت‌ها موجب استحکام هرچه بیشتر روابط اجتماعی ما شده و روابط اجتماعی موجب تداوم زیست گروهی و افزایش شانس زندگی و تولید مثل اعضایی شده که این روابط را ایجاد و حفظ میکنند. اما این روابط تا کجا به نفع ما بوده به عبارتی دیگر آیا داشتن حس همدلی نسبت به همه موجودات و نفوس دیگر می توانست برای ما مزیت باشد و به تکثیر جنهای ما کمک کند؟ یا اینکه همدلی و همزاد فقط تا زمانی برای زندگی و تولید مثل ما مفید است که شامل اعضای گروه و جامعه خودمان باشد؟ اگر قرار بود با آهوها و خرگوشها و ماموتها هم همزاد پنداری کنیم، آیا دلمان می آنها را شکار کنیم؟ در مطالعه که توسط کلودیا رودولف وان رور از دانشگاه زوریخ صورت گرفت به دو گروه شامپانزه از دو باغ وحش زوریخ فیلم نشان داده شد. فیلمی از کشش شدن یک بچه شامپانزه توسط هم نوعانش، فیلمی از کشش شدن یک میمون کلوبوس توسط شامپانزه ها. فیلمی که رفتار روزمره شامپانزه ها مثل شکستن گردو را نشان. زمان تعمل شامپانزه ها بر روی فیلم کشته شدن بچه شامپانزه توسط هم نوعش چهار برابر تعمل بر روی دیگر فیلم ها بود. بقیه فیلمها از این نظر با هم فرقی نداشتند. البته شامپانزه ها باکنش دیگری نیز نشان نمی دادن و مثلا هیجان زده نمیشدند. از دید وانرور شامپانزه ها معنی هنجار اجتماعی را میفهمند و نیز فرق انجام آن توسط گروه خود و دیگر گروه ها را نیز درک می کنند. یعنی در گروه خود بچه شامپانزه ای را نمیکشند و وقتی در دیگر گروهها آن را می بینند متوجه هستند که کاری ناهنجار صورت گرفته. ولی دوچار تحریک احساسات چندانی نمی کشته شدن یک میمون کلوبوس توسط دیگر شامپانزه ها اصلا برایشان اهمیت ندارد و با خوردن گردو یکیست. تا اینجا می شود گفت میمون بزرگ مثل شامپانزه ها حس همدلی و همزاد پنداری دارند. این حس در شکل گیری روابط اجتماعی و معنی یافتن هنجارها و ناهنجارهای اخلاقی نقش اساسی ایفا می کند. بیشترین برد اثر این حس شامل اعضای گروه خودی است و بیگانگان را شامل نمی و آنها حتی می توانند بچه شامپانزه های گروه های دیگر را بکشند و بخورند. از قرار معلوم همه این خصوصیات شامل گونه هوموساپینس هم می شبد. و ما هم فقط نسبت به هر کسی که او را بیگانه نشماریم حس همزاد، پنداری و تمایل به رعایت اخلاق داریم. ما میتوانیم نسبت به موجودات و یا حتی انسان های دیگر که آنها را بیگانه ببینیم مرتکب هر گونه بیره میشویم و درد و رنج آنها ذره ای ناراحتی در ما ایجاد نکند. دیوید ایگلمن عصبشناس از دانشگاه استنفورد تحقیقی ترتیب داد به این صورت که داوطلبان را در دستگاه اسکن مغزی قرار می‌داد آنها در این حال شش دست را روی صفحه نمایش مقابلشان می‌دیدند یکی از دستها توسط کامپیوتر انتخاب می‌شد و تصویر آن جلو می آمد. در حالی که داوطلب مشغول تماشای آن دست بود یکی از دو سناریو ممکن بود اتفاق بیفتد یا میدید یک سواب کتانی یعنی گوش پاک کن روی آن دست مالیده می شود؟ و یا میدید سوزن یک سرنگ در آن دست فرو برده می شود؟ اسکن مغزی نشان میداد که این دو عمل در سامانه بصری مغز انسان حرکات مشابهی تلقی می شودند. و فعالیت یکسانی در این سامانه به وجود می آوردن. اما دومی یعنی صحنه فرو بردن سوزن در دست باعث فعال شدن شبکی درد نیز در مغز مشاهده کننده می شد. فعال شدن شبکه درد در مغز اساس همدلی و همزاد پنداری است. ایگل من آزمایش را قدری تغییر داد. این بار همان شش دست روی صفحه ظاهر می شدند اما هر دست دارای برچسبی بود روی هر برچسب یکی از کلمات مسیحی، یهودی، خدا نابابر، مسلمان، هندو و علمگرا نوشته شده بود علمگرا یعنی کسی که بر لزوم مهوریت علوم تجربی و روش تجربی در همه شئون زندگی تأکید دارد یکی از دستها توسط کامپیوتر انتخاب شده و تصویرش بزرگ میشد یا سواب کتانی به آن مالیده میشد و یا سوزن یک سرنگ در آن فرو برده میشد بسته به اینکه خود داوطلب از کدام یک از گروههای مذکور بود واکنش مغز او متفاوت بود اگر خودش با صاحب دست همگروه بود، مثلا هر دو مسیحی بودند، شبکه درد در مغز او با صحنه فرو رفتن سوزن فعال میشد. اگر صاحب دست همگروه شخص داوطلب نبود، واکنش شبکه درد او به مراتب کمتر بود. یکی از نکات مهم این آزمایشان بود که تنها یک برچسب می توانست تا این اندازه حس همدردی را کاهش دهد و شخص نیازی به ارائه شواهد و مدارک زیادی نداشت این نکته شامل همه گروهها حتی خدا نا نیز میشد در واقع مغز ما نسبت به کسی که هم گروه ما نباشد غیر انسان سازی میکند و او را همچون یک شیء میبیند لاسانا هریس از دانشگاه لندن به داوطلبانش تصاویر اشخاصی را که به گروه‌های مختلف جامعه تعلق داشتند نشان داد. او متوجه شد وقتی داوطلبان به تصویر افراد بیخانمان نگاه می‌کنند، قسمت میانی کورتکس جلوی پیشانی مغزشان کمتر فعال می‌شود. این ناحیه وقتی ما در ارتباط با دیگران هستیم یا به آنها فکر می‌کنیم فعال می‌شود. اما وقتی با اشیا سر و کار داریم فعال نمی شود. گویی ما هویت این افراد بیخانهمان را از آنها میگیریم و دیگر با آنها همدلی و همدردی نداریم و لاجرم آنها را مشمول برخورداری از قواعد اخلاقی انسانی نیز نمیدانیم یا به عبارتی آنها را شیء محسوب میکنیم حال ببینیم این خصلت‌های های مغز ما چه کار کردی در هزاران سال گذشته داشتند؟ در طول صدها هزار سال گذشته گروه های انسانی همواره با محدودیت منابع زیستی مواجه بودند و برای برنده شدن در مسابقه حیات از یک سو نیازمند پیوند های قوی اجتماعی و اتحاد مؤثر بین خودشان بودند و از دیگر سو نیاز به بیرحمی نسبت به دیگر موجودات و گروههای رقیب داشتند همدردی و همزاد پنداری مهمترین عامل ایجاد اخلاق و اخلاق یکی از عوامل مهم تشکیل پیوند اجتماعی و ادامه حیات گروه و به وراست رسیدن ژنهای اعضای آن به نسل بعد بود اما این حس باید در مواجهه با دیگر موجودات و دیگر گروههای رقیب خاموش می‌شد تا بتوانند بدون تعلل و درنگ آنها را از صحنه رقابت حذف کنند و حتی خود آنها را به عنوان ماده غذایی مصرف کنند و یا از نیروی کارشان بی آنکه دچار عذاب وجدان شوند استفاده نمایند شواهد هم نوع خاری در آثار به‌جا مانده از اجداد شکارچی خوراکجوی ما یافت شده با شروع یک جانشینی و افزایش جمعیت و محدودیت آب و خاک حاصلخیز برای تغذیه مردم و دامهایشان این رقابت به اوج خود رسید مردم غذا را از زمین برداشت می و این بار هم برای غذا و هم برای زمین که وسیله تولید غذا بود با هم به جنگ می پرداختند. منبع و ابزار تولید غذای یک گروه هدف گروه دیگر بود. هر فرد یا گروهی که میخواست ثروتمندتر و مرفهتر باشد می‌بایست زمین حاصلخیز خیز بیشتری می‌داشت. گروه قوی و خودخواه جای خود را به گروه های قویتر و خودخواهتر میدادند و هرچه گروهی بزرگتر و قویتر بود شانس بیشتری برای رساندن جنهای اعضایش به نسل بعدی داشت. همه اعضای گروه باید متحد می بودند و در جنگ، شرکت و جانفشانی می کردند و بیرحمی نشان میدادند. حتی آنها که از گروه پیروزمند می این شانس را داشتند تا جنوم برادران و پسر اموهایشان که شبیه ترین جنوم به جنوم خودشان بود را به نسل بعد منتقل کنند. به علاوه فرهنگ و سنت هایشان و نیز دین و خدایانشان را هم به نسل بعد منتقل می کردند. پیتر تورچین انسانشناس فرگشتی از دانشگاه کنتیکات در یک متاانالیز بزرگ با کمک شبکه ای از متخصصان به جمعوری و تحلیل اطلاعات باستانشناختی قرنهای متمادی از زندگی بشر پرداخت او یک بانک اطلاعاتی جهانی فراهم کرد تا به جستجو در طول تاریخ و ارز جغرافیای جهان بپردازد و هر داده ای درباره جنگ را مورد تحلیل قرار دهد از بقایای یک سنگربندی ساده در خرابه های یک دهکده هزاران سال پیش گرفته تا آسیب‌های وارد شده به کشته کشته‌شدگان جنگ‌های باستانی و نسبت این قبیل استخان‌ها به کل استخوان‌های یاف شده مربوط به هر اصر و دوره ای. حاصل این متاآنالیز این بود که خشن‌ترین دوره تاریخ بشر مربوط به زمانی است که به تازگی یک جانشینی و کشاورزی را آغاز کرده بود پیتر تورشین این دوره را دوره جنگ همه در برابر همه می‌نامد از اینجا به بعد هر آمدی که میتوانست موجب تشکیل گروه های بزرگتر و متحدتر شود میتوانست به آن گروه برتری استراتژیک دهد تا قادر گردد زمین حاصل خیز بیشتری تصاحب کند و سهم بزرگتری از تولید را نصیب خود گرداند و شانس زنده ماندن و یا توسعه اقتصادی. و گرفتن زمین های باز هم بیشتر را در این جنگ های بیامان افزایش دهند ایمان دینی می‌تواند نقش یک ذرات خانه تسلیحاتی را در این میان بازی کند و روحانیون اثر بسزایی در این مبارزه تسلیحاتی داشتند می‌پرسید کدام مبارزه تسلیحاتی گرامیان همین جا در صفحه 147 فایل آوایی دهم از کتاب فیزیولوژی ایمانو به پایان میبرید تا درودی دیگر بدرود